أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه سلام على رسول الله صل الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وإلى و عالمان طبعه هم به احسان الى یوم الدین مسلمان های مخترم جای شکر است که باز هم تعداد از مسلمان ها خاطر استقبال ماه مبارک رمزان در خانه خداون در مسجد مبارک جمع شدن اصلا وقت ما و شما در یک مجلس وقت جمع میشیم حدف از مجلس باید بفامیم و از خود سوال بکنیم که چرا ما در این مجلس آمدیم و وقتی که از مجلس دعا میکنیم مبراییم این مجلس برای ما چی پیام داشت و ما چی مختیم و چی باید بکنیم اینوان این مجلس امروزی هست که استقبال از ماه مبارک رمضان. خب ایره همه اگه ما شما که ماه مبارک رمضان یک کورس عملی است که برای انسان به شکل پرکتیک انسان ام میاموزم و هم برای آینده خود زخیره میکنم. دوسای از این موجما، انشاءالله چند روز بعد شاهده مستقیم دقت کنم. تقدیم میکنم. آمدن ماهی باعثاتی که ماهی قرآن است، ماهی عبادت است، ماهی تعاتت است، ماهی باز شدن شیطان, ها، شیطان هاست، ماهی باز شدن های جنت است، ماهی باز شدن دروازه های دوزخ است ماه رحمت است، ماه مغفرت است، ماه آزادی هست آتش دوزخ هست تمام این امور در رمضان مبارک هست پیشتر استاد گفتن که وقت ما این بارک رمضان می میبینیم که مسلمان ها در سراسر سر دنیا در آسیا، اروپا، آمریکا، افریقا در تمام دنیا مسلمان ها روزه گیرند بناهن ماهی مبارک رمزان یک کورس اینترنشنال یا بین المللی هستی پیش ازی که ما در باره صحبت بکنیم باییم درباره اشتراک یک انسان در یک کورس جهانی است. شما فکر بکنید کاندید شده این بورس، بورس است که در اینجا مسلمان ها از سر تا سر دنیا دهی کورسی که شما اونجا میرین و, و بورسی که بیرین در کورس تمام از اینا اشتراک دارد آلو بایین ببینیم شما تصور کنین در یک بورس شما کاندید شدین و شما را میگن که شما را میبرن به کشور اسلامی این بورس یا کورسی است که در اینجا از تمام دنیا مسلمان ها اش است وقت شما اونجا میرین اتمند پرسال میکرین تو حالا ده برسی که من میرم چی کارا باید شده؟ از وقت چی قسم استفاده شد وقت میگه وقت ازی بسیار مهم است. وقتش بسیار مهم است بارزش است. ازی وقت باید استفاده کدید. کارای بیهوده نکنی، دقیقه با دقیقه از تو ارزش دارد. امتیانش چطور است؟ میگه امتیانش بسیار سخت است. بسیار سخت و از پشتر امتیان سخت گرفت در شد دستش چطور است؟ میگه درسهایشون باید جدید پیریزی بکنیم از این خاطر اگر خودت نمیفهمی از یک کس دیگه که میفهمه و معلومات داره تمام این معلومات را میگیری و خود خوب مامون تا شخص بسته میکنی که من این کورس باید درست؟ کسایی که مسئول هستن یا چه قسم؟ چی خوش دارن؟ میگه والا گپای بیهوده رو خوش نداره، حرکت های بیهوده رو خوش ندارن مزاق و خنده و گپا رو خوش ندارن همیشه باید داخل اونمون تقسیم اوقات منظم برای تقسیم اوقات داده میشه. وقت نان خوردرت معلوم است حتی نان زیاد باید نخوری نانت باید مالوم باشه چاید باید معلوم باشه کمکت با دیگر خود تمام برنامه ها را برای تو میگه بالاخره میگه اوه من کل زیر آمادگی میگیرم که در این کورس من داخل شوم و کامیاب شوم آل ماه مبارک رمضان اینم دیگه کورس که انسان تربیت میکنه یک ماه ماه تربیت از تریننگ عمل انسان تو کار میکنه تا 11 ماه دیگه شادت نامی کامیابی بگیرید و یازده ماهی دیگر مثل ماهی مبارک رمزان زندگی بکنید. کتیب علیکم سیام کم و کتیب علیلزین من قبلی کم لعلكم تتقون بخاطره که شما تقوی حاصل بکنید امتهای قبلی هم روزه میریتن تا متقی شدن شما هم روزه بگیرید تا که متقی شوین اگر یک نفر روزه بگیره و تق... خب, خب. من باید چی بکنم آن ما استقبال میکنیم با این مبارک رمزان من باید چی بکنم تا که دهی کورس کامیاب شوم چی آمادگی ها داشته باشد وقت ما چه قسم تنظیم بکنم این خاطر برادرای عزیز سر از امروز قلم و ور وردارین برای ماه مبارک رمزان تقسیم موقاتتانو جور بکنیم. و این تقسیم موقات از دل خود جور نکنین اگر یک محصل در هر فاکولتی میره اونجا میره در تدریسی از او تقسیم اوقات میگیره اگر در یک مدرسه میره اونجا پیش ناظم و ناظر مدرسه میره و برش میگه چی تقسیم اوقات است. پس امروز شما تقسیم اوقات تانه بسازین لیکن نازم این مدرسه و این مکتب و این پوهانتون رسول الله صلی الله علیه وسلم هست بناهن به احادیث رسول گرامی اسلام گوش بتین که پیامبر خدا برای ما چی میگه؟ قرآن چی پیام داره؟ ماه مبارک رمضان از ما چی میگه؟ تقسیم اوقات چی است؟ تا ما تقسیم اوقات داشته باشیم، دهی کورس عملا و به شکل درس کار بکریم مطابق امی تقسیم اوقات تا اینکه ما بتنیم در آخر شاهدنامه کامیابی بگیریم ده از او اگر به تقسیم اوقات روزه بگیری رمضان میایه رمضان پس میره و باز در آخرش فقط خود عمق خاطره هایی که الودای روزه دوران الودا الودای روزه دوران الودا رمضان 30 روز میمان مایه و قوت فقط در تعبیرات کلتوری و فرهنگی و شکل کلاسیک خواهد آمد خواهد رفت از او ایچ استفاده نخواهد کرد. بسیاری کسات فکر میکنه که والا رمضان که است اتیم و سیام روز صبح وقتی که چیز آمد بگید تا شام اما ای خود روزه گرفتن است که در اونجا واسطو خوراک نمیکنی. اما رمضان که است این است شهر و رمضان گفته شهر و رمضان الی انزل فیه القرآن. بنا تو در ماه مبارک رمضان در عبادت های خداوند از چه وقت باید رمضان شروع میشه رمضان از اینکه روزه که اول رمضان روزه آغاز میشن تا شبیعید که آزان داده میشن کل ازی در ماه مبارک رمزان است ازی خاطر کسانی که وقت در نظر نمیگیرن روز روزه میگیره شو در معصیت خدای از و جل شو فلم سهل میکنن شو قتبازی میکنن شو مثلا خنده های بجای میکنن صحابه پیغمبر این خصم میکنن نه خیر اونا روزشان سیام بود و شبشان قیام روز روزه می گرفتن و شب در عبادت خداوند استاد می شدن. و آن دل درس میخوندند شبها ها را تا وسف میشیشتم عبادت میکردن تعلیم علم میکردن از این خاطر باید در هر مسجد از ابصر متقاضا میکنم که تقسیم تقسیم اوقات سی شبه در اینجا باید ما داشته باشیم که حداقل چند شب یک نشست باید باشه که در این مسجد باشه یا دیگر مسجد باشد دیگر مسجد باشد تا ما سنت پیغمبر و سنت خلفای راشدین که روز روز داشتن شب در عبادت خداوند بودن. این قسم که در افغانستان رواج است که روز روزه بیگی و شو هر چیزی که دلت شد بکو شو برقص شو سوریه سکو شو خواندنا را سکو شو فالمورسال کو شو قتابازی بکو این روزی از خداوند قبول میکنه از او تو روزه داری که این روزه در دانش است روز روزه میگیره و شو ملائکه های خداوند ایره مراقبت میکنن شو در معصیت خدای عزوجل است پس از نگاه وقت ماه مبارک رمضان مکمل ماه هست که باید یک انسان مسلمان شب و روز 24 سال در عبادت خدای ازدو وجل باشد. او مسلمانی که در ماه مبارک ازان سرریال های این دیره ترک نکنن روزه بر از هیچ تاثیری نمیکنن. شما اگر در یک کورس بنگ جایی برین میلیوناللم مسا در کورس رفتم در بورس رفتم تمام سرریال و خواند و فلما کلش از دستم رفت وارد درک کردم برادر اگر از سریال سر میکنم باز کرس دستخوا. تا این وقتی که تو در کورس ماه مبارک رمضان امتحان میدی اولین امتحانی ای هست که از سر امیال تصمیم میگیره که ما در ماه مبارک رمضان دشمنای خدا را مشرکین ها که اون دوهای بچها و دخترای فیلمای ایندی هستن مشرکین هستن گفته شما با امرای کافرا و مشرکین دوستی و محبت نکنین مردم افغانستان 90% اش علاقمند اون دوها شدن چرا به خاطر ازی که محبتشان از طریق فیلم و سریال ها پیدا شده دشمنی تازه اول اعلان بکو بگو خدایا من ما به خاطر ماه مبارک رمضان از دیدن سریال ها و فیلم ها دوری می به خاطر از اینکه ما در ماه مبارک ماه مبارک رمضان و ماه قرآن داخل شدیم روزش سیاه و شبش قیام است از نگاه وقت از نگاه فکر انسانی که وقت این کورز داخل میشن تمام و هوش و فکرش باید به طرف قرآن باشن باید به طرف احکام قرآن باشه، باید پرسان بکنه که قرآن سر ما چی حق دارد؟ ما تابال حقوقی قرآن نمیفهمند که قرآن سر ما چی حقوق دارد؟ وقتی که خدای از این قرآن نازل کرد ما باید در ماه مبارک رمضان آیا ختمای یک شوا و دشوا؟ امی که فایده میکنن، و یعنی ما اشتباه کردیم؟ ما قرآن بیشتری کسای هستن که در مبارک رمضان 5 6 ختم میکنه، ام از روی میخونه و ام از یاد میخونه، هم در تراوی میخونه و ام ختمه یک شوال و دو شوال و سه شوال داره. لکن قرآن در شخصیت از ایش تاثیر نکرده. ما باید بفهمیم که قرآن پیامش چی هست. وقتی ما قرآن رو میخونیم باید معنای قرآن رو بفهمیم. از این خاطر اگر امکانش باشه در ماه مبارک رمضان باید ما درس های شناسی داشته باشیم و این پیشنهاد دیگه من برای حابه اگر چی روز گفتن که تفسیر موضوعی قرآن را ما فرنشالا مادری مزیت و آغاز می و از صلاه تا خوازخت کردیم که تفسیر موضوعی باشه. درس در رمضان باید بر قرآن شناسی باشه. وقتی مسلمانان شکست خوردن که معنای قرآن ترک کردند در لفظ قرآن در لفظ قرآن گرفتند. خارجی هم خوش دارن. میگه ما بر تان پیش مسابقه بگیرید. حتی تلویزون های مفسد و فاسدی که تمام روز بذره قرآن کار می اونام خوش هستن مسابقات قرآن. نا شروع کنن چه مسلمان ها در این مسابقه گرفتن این فلانی یک ق جایزه گرفت فلانی یک ق پول گرفت قاری صاحب تایتانیك میه بر ما قرائت میکنن مویاش تایتانیك امرو از کاری صاحب ترینام خواهش میگونم که در مسابقه اشتراک کنن از کاری صاحب تایتانیك تقاضا میگونم که در مسابقه اشتراک کنن قاری صاحب تایتانیك بر زبان از حمد بر دلت پیداسنم ای باباتن کافر و ظاهر مسلمانی چیزی از این چیز از شخصیت رو از قرآن در شخصیتش دیده نمی شد حتی ما یک وقت یک حالیس رو بدیدم وقتی که برای ما تراوی می داد لونگیش در بایین یک بود من بسیار صدایش خوش می آمد خوش می آمد بیکی امون ختمش شد لونگیش در بایین فقط در تراوی لونگی رو در سر می کنه. کمی خلا شد دبا این خلطم لنگیره میپرده چرا؟ خاطر ازی که از سنت پیغمبر میشرمن از زیش پیغمبر میشرمن از لنگی پیغمبر میشرمن از لباسی که پیغمبر لباس پیغمبریست می از ازی خاطر فقط تظاهر است نه بیاین برادر عزیز در ماه مبارک رمضان وقتی که رخصت شدین وقت داشتین وقتی تانه برای تفسیر و ترجمه قرآن بتین تا که قرآن بشناسی و قرآن در شخصیت تو تاثیر کنند در غیر از او اگر به سیستمی سیستم که ما می کنیم که شو روز مسابقه به حافظای قرآن است و شو در ترابیس موتردوانی است حجی خاطر یک کس میگه میگسایف در منطقی ما روز ماجویی رفته بودیم گفت مولوی سیفای ما را نامش یک ش فلان کوچ ماندن دیگه تیز رفتار موندند دیگه ش ا دیگه از موتورای دبی که در پاکستان است ازو موندند چرا اون رو نامش دبا موند و وی تیز رفتار موند و خاطر اون ژاپون 15 دقیقه ترو خلاص میکنه و او دیگه ش د نیم ساعت خلاص میکنه این که در پای نه دقیقه خلاص کات باز دبا شد اما نماوس که ما بیخونیم این تراویه تراویه نیست این تراویه تراویه نیست میگه اون دو استره خدای ناراض، مانده و زله خدا پر تو بخیز خلاسیست پر تو وقتی که مولویسی بید رکوب و سجده شد درست کن مولویسی تیست بخوند که ما بروم که ریشتافی دستم نبید که ریشتافی دستی خدا خرکت کنه برخلافه بین خانه‌ای باشه که خواندن نمی‌تونی با ندی اخلال کسایی که برای عبادت اومدن مانع عبادت مردم دیگه راه نشون که من صف رشتفه‌ای هستم حتما باید در صف اول باشم و دیگه راه نبرم که عبادت خدا را صحیح بکنن این چه یک دونع از سبیل الله میشن کسانی که در قایم مبارک رمضان مولوی‌ها را نمی‌مانند سیدی ماخبر کلیگی میره و کلیگی میشنوه شما رشتفه‌ای‌ها شما کسایی که خدا عجی می‌گیرین اگر مانع میشن از خواندن تل... تلاوت رکوع و سجده درست علما به خاطر که درک نمی‌کنی خوب است که در خانه نماز تبه خوان در در قتراوی را بخوان اما ولی از خدا از خدا بتر مانی از این نشو که جوانایی ما که میخوان که در 50 دقیقه و 60 دقیقه تراوی خدا بخوان و هم مانع عبادتش نشو عبادت خو این قسم نیست در عزیز شما از خل نماز پیغمبر صلی الله علیه و وسلم بخوین پیغمبر صلی الله علیه و سلام وقتی که نماز میخوان بین رکوع و سجده و قیام و قومیش به بین قومه و بین رکوع و بین سجده و جلزه تو وقتی که رو کمکات سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، نو مرتبه سبحان ربی العظیم پیغمبر خدا صال الله علیه و وسلم میگه این سه مرتبه برای یک کفو کوپ مریض است نه برای یک جوان قوی یک جوان قوی باید در رکوع خود نو مرتبه سبحان ربی العظیم بگه از اقل هر مرتبه باید سبحان ربی العظیم بگه پنج مرتبه باید بگه سه دفعه چرا ما سر خود بیخی فرض کردیم که سبحان ربی العظیم باید می فقط گفته شود وقتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه به اندازی رکو میکردی ما میگیبتیم البته شاید پیغمبر صلی اللہ اشتباه کردن وقتی که سمیه الله و من حمیده میگم در اینجا میگه ایک قدر استاد میشد که با فرق نمیشد اگر یک دقی رکوع میکن در سمیه الله و من حمیده یک دقی دیگه استاد میشد اگر سیره قسوجدا میکند سیره دیگه دیگه در بین دو سجده می نشاست اینی هست نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلام و افغانستان وقتی که در ماه مبارک رمضان که شیاطین ها بسته هست دروازه های جنت بازه است خود خدا به خاطر و خداوند تخصیص دادی دائم و مطابق سنت پیغمبر نماز نخوانی چه وقت می خوری خیلی وقت مطابق سنت بیگانه نماز باندی بوق وار می بسیار تشریف دارند آیا تراویی که در افغانستان خانده میشه؟ شن؟ این قسم تراویی محمد رسول الله خانده، ابو بکر صدیق خانده، عزت امیر خانده، عزت عثمان خانده، صحابه اکرام خواندن کی خانده بوق وار می نمی تری تیکام یک بدعت، یک غلط، نادرست است که سر دین تجارت است که با این تراویه دو بیست و چهار بیست دیم ساعت خلاص بکنی. کی خانده هیچ صحابی نخواندن با خدا نجات ما دست چه وقت است؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني خداوند متعال میگه که ای محمد صلی الله علیه وسلم سلام مردم بگو که اگر شما حقیقتا الله را دوست دارین دروغ نمیگید دروغ نمدین این کنتم تحبون الله اگر الله را حقیقتا دوست دارین فتبعون پس مطابقت از ما بکنین در چی مطابقت بکنیم در ماه مبارک رمضان در تراویح به این مطابقت پیغمبر خدا را بکنیم به این پرستون کنیم از علما بگو او مولوی صاحب بخیز نمیاله از ما عابد سر میخیزه از یه سوال کنیم بگو به این مولوی صاحب پیغمبر خدا چه قسم نماز میخوان عبد خلق برای ما پنج قدرباری نماز پیغمبر خدا گفت بزن که دیگه وقت‌ها و شیطان اونا مرا نمیمانه اددا در ماهر رمضان که شیطان ها بسته است ما مثل پیغمبر خدا نماز بخوانیم. خود برات گفت که پیغمبر خدا بین رکو و بین بین قعمهش سار شدن از رکو و بین سجده و بین ششان در بین نوشته فرق نبود پیغمبر خدا حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگه یک صحابی برک میگه ما حضرت انس گفتیم که یا انس تو خود ده سال گار رسول خدا بودی تو بگو پیغمبر خدا چه قسم نماز میخوان گفت برسان نکنید که باز بر تو گفت که بگو ای گفت که پیغمبر خدا قز نماز شروع کرد میگه وقتی که حضرت انس رضی الله تعالی میگه برو پورت میهمافت که سمع الله و رحمینه استاد استاد منوی حوش بود تاز بیچاره چرا چرا تاول شد چه گافس ولی حضرت انس بر گفت اینمی نماز پیغمبر خدا بود یک صحابی دیگه میگه ما به وضو بودم در مسجد قامت گفته شد رسول خدا صلی اللہ علیه و سلم به نماز پیش شد به نماز پیش شد به نماز پیش شد, پیش شد. پیش شد. پیش شد. من رفتم در خانه خود اوضو کردم حتی غسل کردم پس آمدم از خانه خود هموز و ایغمبر خودو از ارکاته و خلاص نشد برمز رد پیدا شد خانه خود رفتم اوضو کردم غسل کردم پس آمدم رکات اول اموز از نماز پیشین خلاص نشود دیکن وقت خونده نمیتانیم ما این بباره که فرصت هست نمازهای خود رو جور کنیم کم کم امردونسون از گفای ملای تجارتی ننین که مگتیسیسیسیس بخوان که دفق خمجیب خود هست اگر میخواین اصورتان رو اصور رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم است. اگر میخوایی نجات پیدا کنی از رسولی غرامی اسلام در نماز های پیری میکنیم. آدم که الان بگم مبلغی است خدا یک دور کات نماز بیا آب سه امشاء، ماکل ما, ما میشیم دور کات نماز بر ما تراویب تهی مطابق تریفهای پیگان برسال الله قلی است. آدم که الان در روز آخرت بخیزیم بگم گیر رسول خدا، در کل عمر خود دور کات نماز مطابق تریفه تو خانه. تو نشی که پیگان باری خدا بر ما بگه چهار بکات نماز خانه. ووچکی سر کنی دو نیم میلیون کات نماز فنم. ولی بگه که یاکره کات هم مثل ماوره نیست. چی نه؟ نماز خانی بدل خود خاندی. وقتی که روزه میگیریم ماه مبارک رمضان ماه اصلاحات است. به این نمازهای خود چور بکنیم. امروز تصمیم بگیرین که من نمازها مثل پیغمبر صلی الله علیه و میخانم. میگیرین یا نه؟ تعهد مگیرین شعلا؟ که نمازها رو چی میکنیم؟ مطابق تاریخی کی میخانیم؟ پیغمبر صلی اللہ علیه این هست که نماز ما مؤثر می باشه خب, خب. خب. می خواهیم روزه بگیریم روزه بگیریم که رضایت خدا را بکنن. جلب بکنه. چه قسم روزه هست خب خب خب مثال دریور هستم روزه دادانم هست امیال پیشتر آمدیم درک تکسی من افای می که در... در... دریور بود یا دلال کدام الكضام... امی, امی رقاص خانه در بین موترش تصاویر بود که به خدا من که هر مرتبه سعیل میکردم میگفتم امی کلیه میدریور آدم بگردم دیوال دیوال بزن. خدا تو را خدا تو هدایت کنه این خود دیاست است که تو یک زن عکسش هم یاری و یک خنایش باز است که کل مراجعه اینو تو سعیل بکنه تا شان هر قدر کسی که در تکسی تو بالا میشه به مون اندازه غذاب خدا میشه. چرا این کار میکنی تو دیدوی مسلمان هستی؟ این ملدیستی که ما آمدیم با ورکا این منظره رو مدیدم یک نفر است آسف من روزه دارم لیکن خاندناش چالان هست من روزه دارم آسف یک فیلم قبل پیش از تو بدیدم یک فلم آمباد از تو دیدم، این اصف روزه خلاص شد من روزه دار هستم به دا سینما میرم من روزه دار هستم گوشکی های موسیقی در گوشم هست من دار هستم، غیبت قطع نکردیم ما روزدار دار هستم، با همین به غلط سیمال میشه برادر نظر عزیز. اگر میخوای روزدار دار حقیقی باشی، باید کاملا روزه دار باشی. گوشت باید روزدار دار باشه. در دا حدیث شریفت اگر کسی به یک زن رقاصه به صدای ز گوش میدن در از دو در روز قیامت سر به که تو خوانندارای این زن رقاصه گوش می کردی. در حالات عادی و در ماه مبارک رمزان که ملایکه های خداوند اینجا میعین و میبینند که تو روزدار هستی و میگه بله نیستی روزدار روزدار روزدار نیست دان یک حیوان هم یک چیز رو پر در دانش نه آب خورده میتونم نه غذا خورده میتونم ایخ روزی حیوانی میشه انسان فقط پیغمبر صلی سلام میگه که کسی که سخانای زشت و اعمال زشت ترک نکنن خداوند هیچ ضرور از نداره که این نفر خوردنی و نوشدینی خودت ترک بکنه. روزی کامل کدام روز است؟ روزی است که گوش ما روزه دار به نهر هر, هر گفت که دهو غزب خدا هست هر موسیقی مبتذلی که دهوج غزب خدا نازل میشن و امروز در افغانستان ما یک خاندان نداریم. کدام خاندان است که حداقل تو را که او مطابق قران و سنت باشه در مجموعه از الف تا تا بهش کلش نارواه هست کلش وصف زنای رقاص است کلش اونمو معازف و اونمو آلات لهو است که پیغمبر خدا حتی میشه طولا یکس میزد گرتای خدا به گوشهای خودمان که صدایش نشناوه و امروز ما اتون میخیزیم و یگان تا ملا و دا پیدا میشن که نی ولا فلانی موسیقی جایز هستن فلان و فلان, فلان اگر ای به قرآن سنت رجوع کنه باز نی که گبد کجا هست به برادر عزیز در ماه مبارک رمضان گوش خدا باید روزدار داشته باشیم و گوش چه وقت روزدار میشه که انسان از این موسیقی های و غلط گوش خدا حفظ بکنه زبان چه وقت روزدار میشه زبان باید روزدار باشه كه. زبان انسان باید به چیزی که خداوند از او خفه میشه باز نشه بسیاری کساست قیبت میکنه و روزدار است قیبت میکنه برادر. پیش از آمدن رمضان اله ده تقسیم اوقات ند شک در است که خدایا من در ماه مبارک رمضان غیبت ترک میکنم خدایا من این خواندنا را شنیدنش ترک میکنم بسیاری کسا روزداره دارند لکن روزدار نیست چشمش به دیدن نامحرم در بسیاری ها و فیلم ها چقدر زنای نامحرم است که اینا میبینید آیا این ای اجازه هست از دیدگاه دین مقدس اسلام آیا این ای اجازه است ناروا هست؟ حرام است ولی بشنوید کسا اگر یکजना وجود دید که در چادری یکانا که معلوم میشه خدا خوب بد میگیره که نه والله من چشمای ما فد کردین اما وقتی در پیش فیلم و ذرکه میرخصه یک قرار فرش دانشوار ما دا رو سایل میکنه ها اخوای دانشوام سر کرد در مای مبارک رمازه یخروز روزانه شو یخروزی حقیقی نشد. پس در روزه باید چشمای تو از از از, از دیدن چیزی که غضب خداوند بر تو قسم میکنه جلب میکنه ازو باید چشمای درست کنی انسان باید روزه دار باشه قلب انسان باید روزدار باشه. او کسی که تو وادی افطارش ده قسم غذا، پنج قسم غذا ماندگی است. کارتانکی ریافت خریده، سه می‌کنم این مبارک که دو سه کارتن مالایی آوردهم در اکثر قرار جای به جای کردیم. خب ولی سه بگذکر کارتانم مرا با یک بیشتر خوبش گرفتیم. آیا خیلی ای قلبم روزدار است؟ آیا بد نزیر روزدار است؟ بیشتری کساست میگه نه سه میخواد رمضان لاغر خنر نشد، من یک سه کیلو وزن ممکن است به خاطر از اینکه تو شکمت نیست، قلب تو روزه نیست. او قلبی که روزه باشه، فرسان میکنه که در سر دسرخار مجزا هست، آیا در امسایه های من، و در اقارب من، و در همشهریان من، کسایی هست که روزه داشته باشه و شام روزه افطار نداشته باشه، روزی تا خدا قبول نمیکنه که تو خودت در سر دسرخارت پنج شش قسم جوزاست، و در اقارب و امسایه‌ها و همشهریات کسایی باشن که یک قسم نداشته باشن، از بی شام هم روزه دار تا خفتن قرار بی روزش. بار روزه شیشتن تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نه... نهند آدمی صحیح میگه که تو نام آدمی نیست پس اون مسلمان جو شده میتونه از این خاطر کسی که قلبش قلبش به حالت دیگر از حالت دیگران بی خبر باشه از گرسنه‌ها و فقرا و یتیم‌ها و بیچاره‌ها خبرش از این خاطر در تقسیم اوقات خود انصار مسلمان میگیره که فلانی از خودگی مغرب است باید یک پنج کیلوئی روغن برش ببرم فلانی بیوه است برای برای از بیوه 1 کیلو برنج ببرم برای اولاد خود دو کیلو گوشت گرفتم و این 2 کیلو رو بر فلانی خانه فقیر بگیریم آیا نیستا نمیشناسه اما چون قلب ما روز دار نیست از این خاطر بی‌تفاوت هستیم بین در تقسیم اوقات خود در باب رفقرا هم سهم بدیم و فی اموالهم حق للساائل والمحروم در تحت این آیه قرآن داخل شویم که مسلمان حقیقی است که در مال ازو حق است برای مسکین ها برای سوال کننده ها برای مساکین برای فقرا حق باشه. باید در تقسیم اوقات خود سر از امروز ایجاد آویل این برنامه هایی که ما باید یک یکی ازیرا در ماه مبارک رمضان سر خودت بیک بکنیم. میدی خدا باید روزدار داشته باشید. می روزدار چی مانا که؟ عادیاکل اگر کسی می روزدار باشه نانش خداون آنگفته دو وقت بخوریم. دو وقت بخوریم. نگفته شش وقت بخوریم. آلماس ماشومان مثلاً صبح می چاش می و شام می خوریم. در ماه مبارک رمضان باید استقاق و شو خدا کامل 4 کنیم و اینمی چیزهایی که در چاش میخورید اینه بر فقرا و مسکینا بدید اما این که تو میگی نه حق صوب ما و حق چاشت من. ما حق صوب و چاشو پس یویی میخورم دو وقته باز حق چاشت تو شوه باز چاشو باز داخل کرد باز رو در شام ده وقته افطاری میخورم دیگه وقت سی می وقت میخورم آن چهار وقت ساخت چه چهار وقت ساخت چه روزه دارین روزه سر روز تاثیر میکنه اتاقل باید تقسیم اوقات خدا جور بکنیم. برادرای مسلمان جور بکنید تقسیم اوقات تانکه نان و چاشتو خود ما براکی تخصیص بدیم بر فقرا و مسکینات تخصیص بدیم اون وقت است که ما ما روزه دار است روزه سر ما تاثیر میکنه رنگ ما را که تغییر میده کمکه احساس سستی میکنیم کمک احساس گوشنگی میکنیم از درد دل, دل دیگران میکن. اما یک نفری که در ماه مبارک رمضان در سحر ایدو دو قوتی میخوره و وشاام س روباها را با سرز مراب هم کوده میاشت کم خص و صبحکی بهبرادر کسی که صبحکی است در رما صبح از هم خیست آا قش بود درو دار نیست. بیشتری که از اون کی تمیگه موطبیخ کوکی میگه آرقش گنده بوی تا با خاطر که زیاد پر خورده خورده خورده و خفتن وقتی که به تراوی مییچ آمدن نه میتونه ولا ذبش کم بیخی چیز کشت از این خاطر بدن انسان شکم انسان باید روزدار باشد. و او وقت روزدار میشه که سهمی بر فقرا از مال خود بده بنا خلاصی کل عزیزی برادرای عزیز ما باید روزه را در وقتش 24 ساعت روزه باشیم روز روزه بگیریم و شب کنیم یکی دوم ایست که تمام اعضای بدن ما دست ما باید روزدار باشد. دست چه قسم روزدار میتنا شدن که هر جای که دیده یک نیش صفحه یک کسی با کمک ذرا دارن فوراً با دست چیز کنیم آخر دیگر پایت باید روزدار باشه که قدمات بیکار که ماندی طرف مسجد بدو بیکار که ماندی بیاد در مسجد نماز بخوان میفهمی که حتی نفل وقتی که میخونی در مسجد وقتی که تو در ماه مبارک رمضان نفل میکنی نفلت به فرض ثواب داره از این خاطر که بیکار ماندی فوراً دل دیدی طرف مسجد بیا طرف کوبک برو کارهای نیک انجام بده پایت به طرف خانه خداوند در حرکت بید 24 ساعت از عقل باید قران با معنای قران در باری قران تفکر و تدبر بکنی هستند. آخرین نقطه که ما میخواییم خدمت آن نهرز بکنم برادرهای رشوت خور خطاب ما بر رشوت خورای عزیز گروه که شما رشوت خورا. لعنت خدا سر شما نازل شده. هر کسی که بر شما میگه که رشوت والا پیدا و پناه هست. اگر برام پیدا و پناه بگیری هم لعنت خدا سرده هست. به بناام پیدا کنه اگر بناام شیرینی بگیری هم لعنت خدا سرت نازل است ملعون هستی رسول خدا صلی الله علیه و سلم رشوت خور گیننده و رشوت دهنده را لعنت کرده از این خاطر تو برادر عزیز رشوت خور لعنت شده اگر از پیسی رشوت روزه میگیری و روزه افتار میکنی و خورما میخری و افتار میکنی روزی تو خداوند قبول نمیکنه کند ان الله طیب لا یقبلو الا طیبا خداوند ذات پاک است چیزای مردار قبول نمیکنه برادرای اختطافچی که شما اختطاف میکنین از پیشه اختطاف روزه میگیرین روزه اگر که تو قبول نیست توبه کنین توبه کنین سر از میاد از پیشه حرام نه خورمو زورت چه و خورموی حرام خورمای حلال باید باشه تو کوشش که فرادر این انسانایی که دزی میکنن سرقت میکنن کسبوری میکنن از پیسه حرام، و از پول حرام، با انواع مختلف چال جور میکنن پیسه حرام است. کسایی که از فایده کابل بانک، از عزیزی بانک، از او سر خورما میخرن روزای زیرا خدا قبول نمیکنه. انسان که سود میگیره، دشمنی خدا با خدای از زوجل اعلان کرده. بنان برادرای عزیز بین که در ماهی مبارک رمضان از لباس حرام، از جای حرام، از زمین حرام، از خانه حرام، از خوراک حرام خدا دور بسازیم. و سر از امروز باید که خدا ماده توبه میکنم، ماهی دوباره رمضان برادران عزیز بر كل فرصت است اگر رشوت خوردی وقت فرصت است توبه کو اگر دزدی کردی رشوت است برو توبه بکو اگر گناحکار هستی توبه بکو و اگر بین نماز هستی توبه بکو و دوباره ماه مبارک رمضان ماه آشتی با خدای عزوجل است بین کسایی که برادرای عزیزی که شما نماز نمیخورین بین با خداوند آشتی بکنین بینوازی که انسان بینواذ که خدا جنگی هست. که خدا گت نمیزه و خدای از سر از او غذب به خدا نازل میکنه لاکن فرصت از در ماه مبارک رمضان بیاین، یا باغی شر ای کسانی که به شر مبتلا هستید پس بگردید ماهی مبارک رمضان ماهی آشچیست آشچی با خدای عزوجل ماه توبه هست رجوع به خدای عزوجل پس بریم که توبه بکنیم و کسایی که نماز نمیخورن با خداوند رجوع بکنن به نماز خود بر و اتو تو که من تنها در ازان نماز نمیخونم بلکه نماز خدا باید است در رمضان همیشه دوام می آورد سبحان ربیک رب العزت عما یسفون و سلام علی المرسلين والحمد لله رب العالمین